هم به دوست در نظرگاره هست با که او حاصل بسرد اولا این چشک؟ ساره این خلب شدی که دیگاهی سعدی بیگه دیدیران فایده هم هست که دلبر بینه برنبینه چه روبت فایده کنه هست؟ این چیز زیگاه که تافتا که بیتر آزم نگیده هست یعنی هست در خط دوست پید هست در یک یک دوست که در شداش مستیار بشکرد که مثلا خط و مثلا خط که که مستور که کسی که هست در خط دوست در نظر دارد, دارد. دارد. دارد. یکی یکی هم خط به خمومی ایست که تازه بر آرز جوانان ها و البته جوون گیلونی بی که زیگاه هست یعنی ها آسیا رو نوبی بوده هر کسی به جوانیست زیگاه هست و از مقایین آماده این از که هر دنیا حاصل بینایی مالی کسی که حسن خطه دوست رو کرده زد اینو حسن خط هم برمینه اینکه خط خوشه هم خطونه دو په. تو خامه، تو خامه دیو. تو خامه و خند فرمادو، سر طاعت، نهاده می‌سن. من به دیر بردارم. قلم نیی بوده، نیکید، و بعد سرش پایین بوده، نینوشه. سر قلم تو یه به خط فرمان او سر داعت شده بود قلم به دستگیر تاهای قلم دیگه ما اون به خط فرمان او که فقط این سر واسید می‌تونه و قلم از سر که خراب می‌شوند صورتر قند یعنی قند یه خود اون سخونه همه خود از دارند در خنداتا قد قدسند دید قلمداره شم دارند چاخوی محب درده خاشم دلم هر چند بردی قلمشون هم که سرش خند میشه و مراکب گذب میشه و یکی ناشون سی رو باره میزنن سرش رو دیدن اینجا ما مثل خامسفر برطف فرمان رو با تیر برد ببینید چقدر تشاغوح مرمانگری یا دوستی حافظ، آدم اینهاد محشوب باشه، ما یه قضیری باشی و هرکار هم چقدر زیبا اینها رو پیدا نه در تمام ضرور پارسی هم که دو تاست یعنی میتونید کسی به وصل تو چشم یا شم به که و در حقیقت نور و کسی و به معنی جواز هم هست جواز پروانه ای جواز ک است از پرواز نه یعنی پروانه نی پروای نیست یعنی اال نداید پروانه من جواز ع ال پرواز می حالا؟ می‌گه کسی بس پس تو چون یا پروانه پروانه من جبه مثل شم تو یا که که زیر تیل به تو هر دمسری دیگر ده شام هست کلوی دیگر ده. که حالا بس که مدرد شده نه عشق در اومد دروب در اومد کسافت یعنی یک باشی کاری پی غلاق برده یه که می سرش شد. من دوره بچکی خودم به یاد دارم کرد میشد یا خودم میکرد شده به می چوده یکسی رو هر همچنبه یه بار با قیلتها مقراز, مقراز با قیلتی تاکی به اون اندازه که لازم کتری باشه پایسه تا از تو اینه که هر لحظه شمع رو سرش رو با تیر بردی کنم که کسی ببسته تو جونچم یا فروانه، جواسته دیکن کسی تو هر دم سریع بگرده اصلا؟ با من بسن. ام دارم مات به پای بوز دست کسی به بوز تو آسانه به به نام مراعات نزید مراعات نزید مثلا دست که میارن، پارم بیارن، سرم بیارن، نزیرن. ارزای بده می به زیبایی کنن دو تا سنن یکی مراته نزیره یکی رم بشون که که درست به عکس میارن ضلبت هم بیاره خوب میارن بزن بیاره میارن طلب هم بیاره برای اگه داوود که در روان تو که تو یا تصرف خود دواته. که ذهن از یه چیزی میده به درستی ماهی دوستی رو اون دوست دوست که با هم یاد تو که یعنی از مثلا کابتون یا زمتون از رخشنانی یا تاریکیون روی در این حاصل روانی ذهن ماست شاعر داری شاهی روی آدم لذت به ذهنش ذهنش یه تناسوبی به یه زیبایی درشون کنه لذت یکی از حریبای زیبایی که همه این ها هم هست به دو دست به کسی به آستانه به در همیشه و سر تا پا دست با. درد که چارچون باره که از بیشتر هره هزبانه اون پایینی که در روح میشه که این و برداشتن که رو دیگه پایین که درد یا کلمه جناب به عنی آسکانه یه درستی که بگم جناب آقای خلاکه هست یعنی آقاش همیشون پلی بالا هست اما ما نیست که که همیشه در دفته بود چند با همسرش، با همترازش کنه. کنیم انتا در ترواهی وقتای سیاسی مثلا یک معافل وزارتونه با یک وزیر دفته با معامل رسد با هم این کسیم رعایتش بنابراین قدیم وقتی میخواستن فرد عادی که شما فرد بالا فکره نمیگفته که آقای شاه خوش کن گفته من عرایزم به آستانه در شما کنم به شما رو، حضرت، حضرت یعنی مجلس به حضرت شما عرض کردن که یعنی شما که من از کتاب کنن همجرد شما نسترم، شما بنابراین، سر و آستان داشتن معنیش نهایت توازوری یعنی کنیم با شما که من از تو سرم شما نمیتونم آستان در به پای روز دوم، کسی می‌تونه به دو دست بیدار که مثل آستانه، هنچیز درش برمیندن. به دهده خوشت ملودن، کمی رنگ ارفانی، به دهده خوشت ملودن، بیار کافه ناک، به بود یه نام تمام هم تمام که می‌دهد و این و شدن دماغ شنایی از دیوانی می‌دهد وقتی کسی من یادم من اول بار چه از, از بود پنگ شیست داره تو بود و بعد آفتاب در بود رفت به تصویر شمس رفت که بیشنه آفتاب تصویر کنه. از این و بعد تماقش خوش شد و من بود درست در که تماقش خوش شد یعنی چیمی بود بعدها کردن این که اون در بیادیت کرده به اعتقاد شیه های باید اعتماده و این ها علی و علی در صدرت رد هیچ کسی نیستن همه ی در دفت این که بود باید دماغ ها من یعنی از دیوانگی و کار غیر آقلانه جنوبی مقصودشه اینکه دفت خرش، خشک مقدسی، کار دیوانه ها دوست که گوش دارید یاد واقعه نام که بودی قادر خدوان تمام هر دادت و کاری تو قادر می کنه اینکه هیچ پرهی نمیبری از قادر همین همین فایده کافی نیست که یک لحظه تو از بس بسع عقل اون سبب این چت اگر می این نباست را کرا دمیز فسفسه ای عبد بیخبر دارن همین کافی می کنید، خیلی ما رو می کنید هم وقتی که توفیه تندرش می بانند و این نوع عبد کاسک عبد کاسکتایی عبد خود و دنبال چیزایی جوزی و مسائلی و, و دائم مثل موچه جمع کردن بودن این رو، این عبل حسافگری و عبل قاسبتاری رو توی باز که این آدم رو از بسیگن به کمال یا پردافن روزای در باز می کنم که بازه هم که میگن مارا حالت که در یه ریاضت میشه این آدم از اون بسرسه عرب، عرب دورندیش، عرب کاسبهای را آنو کنه آزون را از حالا خودشون که کسی که از در طباب، قدم خودم ننه آن که از اون راه، از دفت خوش، چیزی ندیدن با حافظ راست که همه این مراحل را دیده در کار تا جایی رفتی که برآن دورد چارده روایت از برد می‌کنید یه وقت انشاءالله فخصت‌ها شمیست که یک حال حفظ بودن داری کنید برآن در کار در رو خباً گفتم و هرها فخصت‌ها اتاز می‌گن نیست با آهار کردن نیست که هر آیه رو نه تنها آدم از حفظ داشته بعد بدونه که اون را بود چی گفته به که اون را بود می‌کنی از در تهبا قدم بیرون نهادن راز می‌گیم تو دنبال مطاق بوده ولی چیزی گیرش نهیمده دارن همون راه شده کسی که از در تهبا قدم بیرون نهاد به هزمین مهی‌کده اکیم صحیح سفرده دل شکسته یا حافظ کار خواهد بود چون داره، دراغ دا خواهی که وشگه دارن می‌دونیم که فرگی داره, داره نیست، یاد البته داره های ایرون اینطوره در اینکه پلیب و شوهر ها رفت شوه و آنجا دا داره های دیدون بسید داره های مرندی بیدن داق نده و از که جهان چون باغ ندارد داره باغ سویز داق ندارد ولی داره بی ندیده بودید همچن داره بوده تشتی ها بوده حتی کرای در بوده جنس داله از اونا ۸۰۰۰۰ این از که معروم داله در قدر و فارسی معروم به داخل مثل داله داغی که وجگرش هست هوا هم به عشقه داغ و که وجگرش مثل داله به پاکنگوهید اینکه داله هم خیلی حال ارز که خوصداد نرشته ما هم در این نرشته هست که با ترکیه فرد منطقه فیدی هفته همه دارد در آنهای قرام هم فرد از فید چهار فیدی زیر و هفتن معنی درست می از این در نیافتن ایشون خوش رو نیشون به زفتقی به توب از سیبوزی بسیدم به سیر به بس که سیران از سیران پیسه فردارد شیر و شیر آقص ها ازال بعدی هم ما به تو رو بود جد گفتیم این ازال ایفانی نیست والا من هر چی نمیدیرم نمیدیرم در دیگونه یکی اول مخصود به یه استولاشت تشبیح از خدا نیست ممکن نیست ممکن نیست به روز بستر هست خب بازم تو بکنم اختلاف داریم دل ما به دور روی یک به چمند ما به دور روی یک دوستان فیده ما هم جا ولی موسیقی ما به دور روگ از سوزه چمن زر پای است دارد, دارد. این من که خاندانی و من از چیز داخت نیاید به کمان افریو که ایران جهان تراف دارد برا که ایران جهان دارد شب تیله چون سرارم ره دیش پیش زلفش مگران که عکس رویش به رهم چراغ دارد زدبن افته طاق دارم که ز او بود دم تو سیاه کنبه که چه در دمارم دارد من و شمه صبح رایی در به خود بگردیم که بسوکیم و از ما بود ما فراح دار. درس عشق دارد دل در دا حافظ که نخاطر تماشا نه هوای باق دارد به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که لاله به ندیم شاق ماند که به کف حیات دارد در بعد نفر کسیر از آنستان داره به گفتیس دیکه هستش هستش هستش نه نه شب پیده چون سرا هم رکیم با تو در در دو بوجه در شیش ناشه شب به گزار بنده یه یاداش کردن که و ده نسخه ده نسخه شیش نسخه هست که در دولمتی دیابان ولی معلوم به اون چهار نسخه و مقدم چمالتا بود رو, چه رو و من کنم شیاداش کردم که همون چهتی به چون خراها را بایی پیشتی چه بهتر از اکثریت نسخه با که دیگار بوده بود برای هم پایی مثل شبم هم هست راه زرگو رو اگر به اون رو عکس به رو که من نداره، رو خیلی تا شب دوی من تو بیا خیلی چه شد؟ که دل ما به دوره بود یعنی اینم باز چیزه اینم خیلی جمعه اثانی نداره دل ما به دوره بود یعنی چمن فراغ دارد فراغ با بین آسایش و سه بار در این غذت تک داشت دل ما به دوره بود یعنی چمن فراغ دارد که تو سپر پای من دست و چوی دارد داره. یعنی من به چمن نمیتونم برم برای که در هم مثل سر و داختار مثل لاله بنابرای کمان برده <تصفيق> سر فرو که درون ز جهان فرا دارد یک کوچره. افرو هم اونچه داره و به خصوص در اون روزدار زیبای فرطانه، زیبای چینی در شعر بازی اون که, و که بود چشم و افرو و همکه خیلستن یه تکیه باید اونچه افروز داره چشمه آی، کل چون من تکیه بشم دوشه یک کمان هم رو می اندازن خود کمان رو بکنم که از دوشه بعد این که کمان از دوشه از جهان برای رو با باهای بسیار استادانهی به هم دیگه آمیده این کمان رو همه رو با هم به خیلی بدردم که از چون چون قداده نیره اسمه آخر که دلشون از جهان پاره جهان اصلا کاره ندید تیره چون سراغم راهی نمیشه راهی بیشتی در آخر مگر اگران که عکس روگشت برنم چراید؟ ضد تاپ دارم تو زورت برنفشه دوستان هم دیدن همه دیدن گل رسیار کشوری کریزیست سرشن پایین ستاقه پلندی هم داره که افرش کم میشه و کم میشه به هم پلند کم میشه به که اون ستاقه پلنده و نفشه رو به دورت نشکلی کرده و نفشه دورت هنچی استقال بلایه داره و هم میداره چون و هم خمیده است و هم مؤثره و هم مذکون به. یعنی هم رو کشیده به برنسه تشکلی حالا معمولاً صورت رو به برنفشه دشت می‌کنم حالت اینجا به عکس می‌گه به یاد می‌گیره چون من خیلی روحاتم از دست برنفشه تلقی از دور ببودم می‌زنه یا می‌عرضه چونکه چه خلطا می‌کنه تاب داشتن تاب یک محنیش گرمی است ترمه از هم تابیده کنتابم از همین، یعنی کسی که همون گرمی به فرمشه خواب دارم، گرمم یعنی اصفانی هستم که به دور اون تو سیاه کم با که چه در دماغ منو شمس کسکوگاهی سیزه در خود بگردیم بازینو از این به هم بگردی، اگر به هم باشی، یعنی با هم حالا، شام صبح، گاهی وقت می, می که همه کسی از پرگوش بحره این نهیم، برای اون و نورش هم می شششششش حالا اون زنده ای رو در این کسی؟ از این نور بهر برداری نمی کنید چند باید گریه, کنی. اون باید گریه که خود برای اینکه و یار ما از ما خابه به ما دوچه نید سر دنسه عشق دارد که در که نه خاطر ها هوای به کلمه تماشا تمام نیروی قدم زدن ماشی دیوار تماشا یعنی پاها قدم زدن قدم زدن که می‌تونی که بار راه را روح‌تن قدم زدن در حقیقت برای رفتن از یه مقصدی به یه مقصدی یه نیز. برای وقت بزندنه و در ذهنش آدم آیستی رو آنگیره نگاه می‌کنه کم کم نگاه کردن چون ببینی تماشو ولی تماشو اصلاً شون ببینی پاهم البته در دوره حافظ که کم کم مهی راه رفتند، تو کار دارد که در دارد که نه خاطر نه با دارد به چمن خرام و پخت گل که که ندیم شاه ماند که به کفت حیاف دارد عیاف و عمل و باز لاله، کنایه از جام و جامسراب پید بیاده میشه اینکه مگر حافظ میده مگر که لاله بدانست دی و خایدن کتاب بذارد و بشد جامعه زکر خناد این جنس اینکه بیاقای دنیا رو نیمونکنزی توی مرد جامعه از دست خوب، یکی از تیری که به این <سؤال> نمایی، سکتنا <سؤال> و جم دارد، که خوابتن یکیتن یکم شد، چگم دارد؟ به سخت خوابی مدایان، مدر خدمی نمید، به دست وشیدی، آه، به دست دستشا وشیدی، که محترم دارد. نه رمول خون از جفای خزان، بلا <سؤال> هم ترمت سردم، <سؤال> که این قدم دارد. بسید خوزدن آن کس قرب چون از دوزمه است، نهت به قدر، حت به ششدرم دارد. زرب به خانه اونکیم، چکل مدار، و اقل کل به صدق این دارد. متهم دارد. به سر به، کس آگاه، پلیز، استمکن، کلام مردم گرد، ره در دارد. دلم کلاهک تاج روز زری، کنون ساخت. جلان به بقیه دورکشی که بودی سوگان دارد. مراوده دن زنی بر سان بینی داری که جلوی منظرشی به به به رجی به حقیقی حافظ چطر بهتون باز که ما سمت طلبیم و اون سلم دارم که ما سمت طلبیم و اون سلم دارم بسیم، بسیم هستونم که در کوران‌های خیلی قدیم، از پیش از اقدام داستان‌های جمشی و داستان‌های کلیوان با هم آمون می‌کنشد در حالی به جمچید، پارشای هندو، و از کلیمان، پارشای و و از شخص ولی از جهت این که هم جمچید، پارشای دسیار در نینه این دو ها و باد و که پرندگان اینا در فرمان شدن کلیمان نزیر این هست که به های یکی به دیگری دیگر نسپس داره شده که هیچ اصلا گفتن جمع چیز مارا چون گفتن سلیمان مارا چون جمع نه اول جایتا باشه راجع به جام جمع صحبت کردم بوده و فقط خیلی به اختصار دیگم اون چه ما در عدب کلاشتی که من داریم جام مالی کیکوس رو نمال هم دامی اشاره می به جام کیکوس رو دونگ خودی بردی از کنبا و مخلو شاد باش جام کیکوس رو قلب چاپرو سیام داد جام گیر کو همون جام جهاندگی جام جهان جام جهادگی جام همه نامه دربیرهای عاقبتان جام سینما جام عالمین جام جهان بین همه لا یک جام اون جا که متحدده دوی که خوبصور پادشان زیجش اول بار در شاهنامه آمده در داستان بیژن و ملیزی و قصه است که میگو که دیژن یه پسر دیب بود کیب و پسر کنگرد سردار دوزن مادر مادرش مادر دیژن و دختر هم بود کنم یه پسر داشت یه پسر یه پسر داشت پسر هم رسته خود رو با منیجه دکتر رفتر افراسی ها خوشباه های شما شده بودونند توزن که که ها رو به گرفتنشون و اینا و منیجر رو منیجه رو با افراسی ها رفتر افراسی ها رفتر شده بودوند دوارش کنون گیرد بسیار پریشون بود و ناراحت این گوستر کجا از این گم شده؟ چه شده؟ چه شده؟, شده؟ تیگسترو که ما ارتباطی داشت خب من مطمئنم که دیگرد از بین در صحب بشه وقت دمبیر من در جامعی که نگاه ها نگام بکنم یادتون میگم بعد که وقتی افل شد بعد به دمبیر ستار تیگسترو رو کرد بعد جام رو حضوری میده در دوستی تعریف میکنه ای در در really ای این جام این بود که بر کواکف و اطراف رشتی یه چیزی شدید این جام های که ما داریم آبداعایی در جام چکلید بسیگه هم نکنم شمیدیم؟ دودیم؟ ندیدیم؟ برحال شکل این جام های دعاانه بشته یه چیزی البته شراب درش میخورد کیپوستروپ و بعد در جام بگاه میکنیم و میبینید که باید در جایی در دا تاییز در هست و بعد هم قول میده که پدرش و و بعد که خب حالا هر کاری هر کاری مکاید، هر کاری مکاید من بدم که نبود کار، کار سپاه و کرد باید تدبیر که کار بود و بعضا فرده های دیده میرم دیجا درد نیکن ما جام های که ای و جامی که کنما ها همیستایی بگردم که هم جام اما جام جم چیه پس مراد از جام جم به تحبیر ظاهری جام شراب هلی و به تحبیر ارفانی مراد دل آره برای که دل عارف روشن میشه به دول تدا خب این روشندیگی پیگم و این معروض به هم صناعی در حقیقه میگه میگه به یقین دان که جام جم جا دل, دل و این جا در جای که سال سکالها دل جام از ما میکرد وان که پردار که میگه خودش باید خودش وید بیرسید، خودش خودش وید که از تو جام جمع دارد در حضایی بگم که چرا جام به جام نسبت بگیشد در ظاهران عدتش تناسط و لفظی جام با هم تناسط تمام با آزی که با جام جم، راحت تلات را جام به اما گم شدن خاتم، گم شدن انگشتری، فادس سلیمان، از امان شمدید. و قسمتش هم که مقدسی دیر دوی آمدا انگشتر سلیمان شدید در زند، انگشتر و اصلا نشان خادشاویی انگشتر شاهان به جای مهرشون هم به کار دست بود ها با خود رو با این خود در حیرت فرمان رو این که به جام جام دارد که جم چه من دارد؟ یک کم می‌نمش بسید تو دست بسید؟ چه به خودی خود نهید چی؟ شید، شیدش اصلا که معنی درخشان و که اسم جمع هستن ولی هم و یه در تاپنا جمع اون که جمع تاپنا هست جمع روچن اسمش جمع هست اگه معنی جمع هم جمع معنی بچه دو گلوست هنوز هم میدونی که در فرصور اونا جمع و و جمع بچه دو بلوز. و در هیر جند هم میگن جمل، یعنی در کرمان میگن جملوب، از جمل برمید گوزن که جمل باید واحد با هم به دنیا یعنی در این اما در نظر تنهل ارفان، در نظر سورتی یک، این اندازه دل مهم و محترم نیست. ما الان دل رو اونان کم در گذشته دل رو یعنی دوتا مرکز پردورایی در بدن باید. یکی مرمز و یکی قلب. مرمز رو جای که حیول دار که افغال قلب رو جای و همین الان کسی عاشق چون درد که در موقع قلبه عواتف زبان قلب کن بکنه می‌دونید که عواتف مهر، عشقه، کینه، پرسه، اینا رو شکن حالات آتیبی همه به این روی در جریان قلب وی در قلب تحصیل میکردن که که مرکز این خوبا در قلب می کنید دو ها بودن که در قلب یک نقطه ای هست تو که هم آمده، به نام من چون از خاک که ده کنم رفت و داغ گیسود تو هم سر رست و دیدار حالا، میگه نه راست نه خلق جاسب آن در سر رست و یک آدم از اون معتقل بودند که یه نقطه ای هست در سیاه رنگ که خواهر که با هم نگذیم یا با و بودن که خون چه اواصف و احساسات و اشت و این که صوفیه معتقدم که آدم جانشین خداست در روی زمین و این استناد بگنم به آیه قرآن خدا می‌گه که خدا ملایکه گفت من میخوام روی زمین جانشینی بشه و از غال رفت مکرد ملایکت امنی جاهلون فلعرزه خلیفه من می‌خوام خلیفهی خلیفه یه خلیفه جانشین خلیف جانشینی روی زمین بذارم ملائکه گفتن خدایا تو موجودی رو اونجا میادی که خون بریزه و قساط بکنه به حال این که ما موجودات و سیار مرزم مردتر یستیم مثلا تردگی هم می کنیم، همه ارش نماس بکنیم، جاها بکنیم خداوند و شما من چیزی می دونم که شما نمی دونم اینا همه تو بار و اتر ها من یفت دو پی ها و یفت به و نه نو نصد دو با هم دکه و ناقتی سلک قال اینه علم و محلات علم بعد هم آدم رو کرد اسمها هر آدم آموخت و بعد به خرشتگان گفتش که اسم این چیزا رو بگیم گفتن خدا یا خواهی نمید. بعد آدم گفت که خبر بده از اسم این چیزا رو خبر دادن بعد اون آدم رو سجده کنیم داشتنش زیاده به هر نمید میگن که اون جانشینی حق اون مایهی، اون جایی که جانشینی حق در اونجاست، این سوویداست و این سر سوویدا که زده میشه همون مسئله خلافت، جانشینی، همون امانت حق یا آسمانگار امانت نتوانی کشید اون امانت از دل آدمی کشید دل. این دریجه بشکن سر صوبیده. حالا دل این صویده ها در از و سر صویده در خزینه هست یه خزینه دل یه خزینه دل رو دستید یه داسفتان نداری یعنی کسان که قبل یه چنین گوهر های به دست شام و ایشی که به مفترم داره محصولی میگه حواستو سرف کارای خیلی دوزی زندگی روزانه نکن البته آدمیزار باید تو بازار باشه خرید روش بکنه کارشو بکنه دوازشو بخوچه غذاشو بخوره خریدشو بکنه ولی دل رو باید با خدا داشته باشه اصلاه مهم دید. مهم نیست که با خرد نباشد اینکه کسی هست که صبح تا چپ رنگ خلایه خونه میده و یعنی با شیطانه اون فایده نده میگه خزینه داره تو به خط و حالی گدایان ندهه یعنی دلتا اصلی یه حوضهای پسته رسمانی به دستش آفت گیده که محسرم بزان سرب رو از قدیم معلوم هست این که سرب آزاد بابرچه می‌کنه سردی به سر گفت کسی می‌بگی نمیاری جواب داد که آزادگان تویده چرا به سرد گفتن آزاب؟ من نمیدونم ولی به هر حال این که راست است، صاف است و خزان نمیشه و جای خزان، جفای زنستان تحمل میکنه میبه نداره ندارون نا بر این اساس داره نمیش کلتن بیگه نه هر تحمل کنن جفاقه بازان گره هم مهمت ستر بر. این قدم دارد؟ قدم میگه بی و پاکش رسید محصم که از قرم کسی مرکز ما پای قدم مرکش شش دارد اول قدم و هم بزنم الان ما قدم رو اجابی که میرم پای که ایش نمیخوره، جز هم رویشن تو مدیس خرد و قیمت این گروه چینی مردون اون مو قدر در شیراز بود هم ولی به حال مسردان اصراها بکنن قدم تو چون جام شد قدر نوش این قدر, قدر ای که نینجا هم با که میخوردن قدم به شمتن عدد کی. به پای قدر گذاشتن یعنی پول شراب بزن گل نرگست رو و دوستان دیدن اولا نرگست خیلی شکر اتا یا که که چیزای معروفش یکی نرگست شده یکی نرگست مسکیم برهان وسطش یکی پیالت نرکس هایی که ما همیشه مینیم پیاله زردین زرد, زرد شش تا برگ گرد سفید دو خود هم پول یک مثال نبرز. یعنی بول سفید که سیاه داریم سفید داریم پول زرد در زهر پلاس پولیسیان مثل و نیکه در آشالاییگه به سفیدن مغرد یکی مثل خواهر مغرد رو دوستن یک درهم یا یک درهم در هنوزم در یونان باید دورش درخمم همون بینار هم همینطور، نمی دونم یا یونانیه و من هم من یک مثال ترده یک مثال هم کمی کمتر از پنج گرمی، چهار و مثلا شیش دماغی و اینا واحد طول دوران اسلامی درم بود و درهم بود و بینار. و هر درمی هم به شش قسمت تقسیم می شده که به هر اون رو می گفتن که دانی اصلا تقسیم شش و تقسیم بر ممناه که هر ریاضی ها درستم هم و هم بده عرض کنم که ممناه شش بسیار بسیار قدیمی بیشتر تقسیمات تایی مثل تقسیم دایره بی درجه زاویه خانه درجه تقسیم خونه به شیشتون تقسیم ساعت به از دقیقه شبان روز 24 ساعت اینا همه برم... تقسیم بر مبنای شیش با پول قدیمی درهم هم تقسیمی شده به شیشتان چون که خونه تقسیم شده به که از همه اعداد تقسیم فضیرداره برای که خودش به یک و دو و سه قابل رسمت بود، اگه برابار کردی به چهارم قابل رسمت بود اگه سه برابر کردی به هشتم قابل بود فکر کردم خیلی قابل نفسیمی مدتی بعد من دیم که 10 دقیلی، ده بازی کرد. پسیل کردی شیش درم داره درهم هم هر شیش داره ولی میگه که آن رسید که هر کسی شیش درم کول داره یعنی کول مختصری داره کسی آن از طرف شان نرگز نه نهت به پای قده هلکه شش در ضرم بگم که نرگز شنلا به نرگزی میگفتن که اون کاسه وسطی سیاره رو به هم درمید به نرگز شنلا <تصفيق> جور دیگه از این از برام و گرافی میاد از اون <تصفيق> و از اون رو من زر از بهای می اکنم من جزر از بهای می دهی نکرد این گرد رو نه روزای تهدیت شده حالا گلاه پنج پنجفری که معروب بوده من که نام گل محمدی و خود رو بود در آشیه کلمی بیروی بی و ازش گلاه های همون گلاه درش همین کلمه باقی بوده گل بانی کل صحبت گلاه بانی عرق گله از یاس اگه عرق بگیرن یا از برنشی اگه عرق بکشن یا, یا از هر گل دیگری عرق بکشن قسمشو نمیکن گلاه یکن عرب باهار ناره میشه ولی مالی گولم که گل که اومد صبت. بعدها مالا در این مطلب این گل چی قدیم در سندی و حافظ و انصالیان رو با اسم می آوردن. که اما برای شو آمان ترگیس آمانی گل نمیاد. خیلی خیری ختمی زنبخ سوسن نیروبر افرو خیلی خیری شباید نبیرم به کم گلد گلد پنج تا پرد داشته یه ذرات پرچم و گرزم و نرماده مثل خورده های زد رنگی میگه ذر رو مثل گلد داریم مکن یعنی اون خورده رو یه جدی داره که خورده ای داری خدا را صرف اشرت پر. که را زیانه ها دارد، صوب دار کرده اون زرات طلا که گرازم بشن گرازه زر یا خرده زر به عنوی زرات ریز که برای قیمتید که در مقابلش پول سکه زده تلال رو درست زد. درست در مقابل خوش. درست بزرد زر از بهایمه اینکنون که گل که گل به ای مکم گل هم بکن اصطلاح فلسکی است. خودما بر طب فلسکی معتقد بودن که خداوند جهان آقای بسید. ولی ذات هم بالاتر از اونه و بالاتر از اونه که گلش پاهاک و سنگ و گیا روبرو بشه و خودما آن الان گفتن که خیلی تو فیمی کردن ها این از که گفتن که خداوند یک جمهر بسیار لطیفی رو آخرید اسمش عرم اوله و حدیثی هم دارید که اول ما قلب الله الان نقصدین چیزی که خدا آفرید. هم بود آلم برکار عقل جوهر لطیف غیر مادی است که جسم است. پی ادامه پارس. خداوند عقلش رو بعث می‌کنه. بعد از آن یک جوهر دیگر اون هم غیر مادی ولی نه به لطافت عقل آفرینده شد به نام نفس. عقل و نفس میگن صادر اول افله یعنی که هر دو بعد عالم آلم هم به اعتماد خودم ها عبارت خوده از زمین در مرکز خوره، زمین در مرکز روش نه آسمان یا نه فلک فلک اول از همه به زمین بود چون رو میره اول جایگاه ما فلک دو جایگاه چیره یا اتاره فلک سه جایگاه نامیت یا مشتری. فلک چهارم جایگاه پرشیده فلک منجم جایگاه بهرام یا مبریخه فلک ششان جایگاه است که اسم فارسیش ماست، مزده فلک هفتم جایگاه دو هده دان دا پیوان فلک هشته جایگاه ستارگان ثابته و خلق نوم اصلا ستاره نده اینا مثل پوسته های پیاز زمین در وسط نو خلق مثل پوسته های پیاز در روی همودن همه این فرضیه‌ها برای خودی که این ستاره‌ها حرکت می‌کردن، اینا نمی‌گفتن چجوری حرکت، با چی حرکت می‌کردن. می‌گفتن که اینا مثل نیروی که روی انگشتری سر باشه، این سیارگان، ستارهگان روی جسم فلک نصب شدن، فلک می‌چرخه، ستارهگان هم باشن. این علتی که فرض کرده. حاضر سیاره‌ها رو یکی یکی و همه ثابت یکی، دلیلش اینه که حرکت سیاره‌ها مرزم نبود به صورت حرکت اونهایی حالا ما اینو می چرا که اصلا مرکز این سیاره ها سمید خورشیده و بعد به نسبت خورشید حرکت اینو تحیم کشه که شما از زمین که نگاه کنه امشب بینید، ستارین نظیبه هم بیره پنشب از اینه از برای اینکه توی اون مسید دوران میشه دیگه این از که سیاره ها تو میدنن حرفات چون محناتی جور نیست، برای هر یک فلکم برای فلک هشتان برای ثوابت فلک نهان بنام فلک بعد گفتم که عمل ده مرتبه دارد عمل اول یا عمل فعال یا عمل کل اون جوهر است که اول خدا آفرید. و عقل از ذات هم میگیره ابلاغ میکنه به نفس اول عقل فعال از نفس اول مربوط فلک نهم و فلک نهم حرکت دهنده تمام افلاک دیگه بعد این عمر میرسه به مرتبه پایین تر به و نقص دوپم که مال فلک هشتون و همجور میاد پایین پایین پایین عمل ثبتون و عمل و نقص که مال فلک اول یعنی فلک قمره در مرتبه دهم عقل تقسیم میشه به حبور جزییه. که اگه داده باشند، من شما دادم که من که نهید، من شما نمیده بسید این تحبیر قرآن یا فلاسفه؟ این تحبیر فلاسفه و عرصتون دیگران البته تفکرشون از این جهت بود که چه دیگه این حرکات توجیح کنن بعدها اهد شهر هم آمدن در علم کلام نیران تطویر کردن با دستورات شهر گفتن فلک هشتوم همون هشتی و فلک نهام همون کرسی و ظیر این صائل و اون همبرا ما خلق الله ال و عطالب که عرض کردم و این همه بر این اساس بوده که میخواستم این آدم و حیکات توجی هم اران میگه مسائل و برای فهم شعر حافظ بود در می باید که نه عبی نیست اینکه یکی قلل کل و پراضه میگفتن هدف انسان، از فرا گرفتم دانش و علم و فصل اونا رسیدنه به عقل فکر رسیدنه به عقل به یعنی در بشه خرد مرز و از گذر از می یک جنون چو مدار که عقل کرد به سر ای متهم عقل چی شده؟ عقل میشه به اخون جزگی عقل بند دو که شما آقای دکتر چرا بهران که نزدیک در این به زمین عقل پنجمه زمین و مرکز خیال کرد؟ از نظر خورشیر که میکنه میکردم خب از نظر خورشید که تیر اولی باید با با هم ناهیده آقای انا حرکتشون سریع تر به درست به همون دلیل که اینا سالشون اول همه که به هره ماه که اون درو... دور و زمین میگرد درست, درست. و زمین تیره درست اینک منه زمینم میتونه یا ده 88 دو دورش تام. آجل تام. زمین رو ساکل حساب می‌کردن. دور سی خود زمین رو حساب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دلیل حرکت سیارگان هم که نمی‌تونستن که می‌بینید که هر بچه‌ای که دنیا میاد که زهره در در برای که یه عامل توی احساب نیست اون آمه حرکت زمین زمین ساکن این هر برد بگیرن اشتباه هم چه ندارم گفتم من حیازی نقصر بود برد که این یعنی تقسیم شده به جز جز گفتم یه. عزیزایش همین عقل من شما سفتی عملی عقل که به همه آدم از ده میشه حالا چقدر و عجبتر اینه،, عجبتر اینه که هیچ وقت بشر از نصیب عقل خودش شاکی یعنی یه نفران بدنش تی میگی؟ من هر قدرم هرگی آن خردتر که از همه همش بیشتر نیست؟ سعدی میگه که سعدی میگه که, که... یکی جهود و مسلمان نظام میکردن چرا که خنده گرفت از حدیث ایشان جهود به طریق گفت مسلمان این یعنی تباهره من درست نیست خدایا جهود بیران جهود گفت به تو راه می‌خورم اگر خلاف کنم هم چه تو مسلمان هست گر از بسیت زمین عرب منعده می‌گرد اگه پرس اصلا بچینم گر از بسیت زمین عرب منعده می‌گرده خود کنمان نبارد یه که دکارت هم اول رساله‌ی هم دیستور دولا گفتار در روش در مصحاب دن البته به تو به نظر میرسه که عقل در این افراد باشه از همین چیز منسفانه در تنظیم شده در تقسیم شده یعنی هر کسی از نصیب عقل خودش راضی در حالی که مثلا صاحب داره یه چیز دیگه فقط دیده خداداد اینا که سر در حوالی خیلی بالای عقل هستن یه چیزای اون میبرن که چیزی نمیبرن زر از بهای یعنی می اکنی اون رو متهم را دلم یک تنهایی یعنی در حضای برای اینکه دل بتونه با اون مرتبه عالی درسیم صدایت جام و جمع در بیاد روحشنگینی یعنی آینه ی حساره بشه باید از هر نقطه قلبات مالتی پاک بشه. از حوشهای نمسانی و چیزهای مالتی و کارهای اجزایی که این جهانی خدا حفظ کنه در از رو استاد عدد فاسیس از منان کسا به دفاع من که گوهرینم بود تو اسمش با بازاری بودن و جواهر فروش به این دلیل است که تو درست رو بعد میگوزش بدا مخشن رو همه خرباره پروش بکنن حالا در حیینت <تصح> بعد از اینکه ممکن این برن ارماسوز و رو رو آدم خیره کن پشت بیچ می کنه وقتی خرید دستو کرده از این نه چ... چیزی نیست یعنی بی خود این همش رو شوق داشت کنه که من این خیلی ناچیزیه و بزرگت آدم دنیا اینا به هیچ وجه بهتری زندگی رو نداشتند. و پول در این اونجا به, به هیچ منترین آدم ها ب ما عروتان آدم ها نبودن، و پس و اسمی هم ازشون نمیمونه. احتمالاً خاصتر ماست در پانزدهم سیه کار دولت و و و و و دیده بوده، چه بادگاهی، چه وقوعی، چه کاری که که معروفه که که چیز تویید <ساید> در اینوبر بود و هم بود و احمد گفتن که استاد قدمتون به چشم به فرمایید خوش آمدید بر که دانشگاه پیلکتون کن شما شماستی و بعد قرارش رو به اون بشتیدم خب دانشمند یک جاهلی نسبیت رو ادعا کرده رو هست کنند که نوبل چقدر بروش شده فکر چی یکتران که هر چقدر بهتر در شرم گفتن که چیز می آیا چیزی چیک صفی که کسی هر قطعشون داشتن و فکر کردن که موبشون مورد به بانک می کنیم چیکو رو که مابلگ که همشتند به چه که از مینیمم بود که خایداری کار نکنون و از شان گرده کم درد. رفتن گفتن چی روشتیم؟ گفتن چی روشتن؟ گفتن چی روشتون؟ من نمیدونم من حساب کردم یک چهر بار که من دیگه من خرجام رو کردم دیدم حالا مسئله این است که اون انشتنگ دید. اون فکرش دنبال اون چیزهایی که کاشی و نمیره نمیره. دل مجرم بوده دلم که لافت زدی کنم شغل یعنی شغل یعنی گرفتاری خاطر یعنی بستگی خاطر وقتی مشغولم به فیلان دار دیشتر منش این که ذهنم <تصفيق> دلم که لاحقه تجربل زدهی کنون دوستم شغل به بوی زلطه دو با باق سهبتن دارن این بو اینجا خیلی خیلی زیبا آمده باره که بو دو مهمیده یکی همون که می‌دونید یکی هم مهم می‌دو آرز بست سعدی می‌گه به بوی آن که شبیه در خرم بیاساگند هزار با عادیه سهندست اگر بفه اینا قریب عشق جفا بردن است تو جانبازی دیگر چه چا که با من بر برنام به بوی آن که شبیه در حرم بیاسن یه به هوای دیگه میل دیگه به عشق دیگه به آرزوی دیگه حالا به بوی زورت تو هم به معنی اون بوی خوشیست که از دور پرگنده بشن و هم ببینیم میداریم همبطه بیدونی می که نوی آدمیزادم نوی خوش را نداره ولی خانما خانوما رو و آوالون ریششون رو چون مردان هم داشتن با گرد سیاه هنگی به نام غالیه غالیه با بین. که جز اصلیش موش یه مقدار مواد خشکوی دیگری هم واقعی بیکرند برای که بروی موش دو خلادش شدیدی بود از دو راگ برای یه ذره کمتر کنه مواد خشکوی دیگری هم واقعی بیکرند چون بس رو گرد سیاه رنگی این به برواش بود آهارون یک کار کردن می‌کردم وسیله دود و میگم. بهش می‌گن مواد خوشبوی چوب آب آفنوست نوست چوب و خون می‌کنم و تو آتش، دود می‌کنم الان اونش آتش، دود این دود خوشبوید بعد از این این کار این دود یه اندتی بدنی به این چون خود صرفتاً شد در استفاده حالا که بکنی اون منجول از دست داده همان من منجول به از دست کرده ولی اصلش روز مطلق اون استفاده از هم نمی کردن در اکثر مثلا شاید این بوده که مثلا که در و زد سرشون بخار خرمپوس کردن که ولی بیشتر بخور که می گفتن این معنی بود در موادی که خود به نظر ما اصلا خوش بود ریز قند بود بسیار سست خیلی بود و میترش مثل خاک هره ریز می‌کردن ولی تا بزن که آتیش بودش بودش می‌ره هوا نماش با شکر با هم باطی کردن، شکر تو آتش ضب می‌شه و در نجه دماغ با فوت باطی کردن. وقتی بریزن هم بوی غنسوی درم خوش رو بوده بوی فرمید. و هم بوی با هم خاطرش هم دوان بشن این که که شراب و عرقبانی را گلاب اندر قدع ریزی بیگه همون بیا تا گل برمشانی نمید نهی درست آبران شراب و عرقبانی را گلاب اندر قدع ریزی تبیز گلاب بزنید شراب برمشانی نسیم عطی‌گردان را شکر در ملک برندازیم یعنی شکر بزن به آتش شکر رو بود از بوش باشیم ما بود نگمان پول چه که به بود یه تو، و حال ظرف را خوش بود و برنجه این هم به میل روز همه بوی دور که بعد سهتم بوی دور همیشه شعر فارسی همه شعرا از بوی خوش دور هم شد ظاهران این عادت جاری بودی که همه تانماد بود داری جنبه نظر و شیبه کرم دارن یکی از ما خرمش. من من شما باید بوده که یکی به دردان بیشیره میگونه یکی نیست که جنبه نظر و شیبه این ها تردیمی است این از زندگی همون روزگار خودش بده دیگه. مرد حسابی آدم حسابیش خیلی از این میگه دلم از صحبت شیراز بکردی بگیره بگیسه اینکه آب و هوای باخت عجم صفحه برده. از آیل اکران اینا, اینا یعنی من از کس... چه کسی مراید برنم برای کسی نیست که جلده نظر داشته باشی و شیلده کرد نشته باشی ز سرقه تساغا همیست قسط من. این حرف برای کسانی است که دعویه و از کردن از چیزها و از مسائل اخبار از بامراه کردن و و داریم به نظرم و به نظرم در قرآن هم هستم هم لا یعلم و غیب رو هیچ کس توز این که در این حال که اپنه ادهی ای از این تخته رو تخته میکنه در زمین مغناه یک داره به سر به قسطه من قسطه اینجا معنی حرف تخیلیس حرف بی حرفی همه جا اینطور میستن قسطه یا معنیش معنی شکایت شکایتنامه است قسطه برداشتن یعنی عرضها ها هست که به به معنیم کلاصم می‌دوشم که در برداشتن ولی اینجا زه سر غیر نیست بسید خدا محرم دل ره در این حرم دار این در حرم دل در حرم بس. یعنی حالا یعنی بعد از اینکه باقی امانی کنم باید بگم که حاجه یکی از شگرداش، یکی از روشهاش این است که یا به در میگه دیوار گوش کنه یا اصلا خودش رو، ایگه رو خودش میخور که شیخ و حافظ و مفتی و مختصف چون ریدم همه حافظم هم در مجلسی، چند در منقلی، بنگریم شوخی که چون واقع سنت میکرم معروفه میگن که تجار یعوندی اولا چونه میزنن خیلی شدن تا یک شکی یک رو در معامله چونه میزنن به شکتن به که مستحصد کنن البته که قدشت شد رو به تمام و کمال میدن یعنی استادان بزرگ معامله اصلا با. هیچ از این رهازه همه همیشه حساب کتابشون ولی چیزی میکنه کنه با بعد در این ماجرا باز که طرف سختی میکنه یا میگه نه یا نه واو به خودش چوشه که من پدر سوخت توه من پدر اون چون ده من من چون تو چون من میگم حالا مدار قالب کنم در حقیقت که رو تدارک میده واکه خوب حافظم یه چنین روشی رو دنبال میکنه میخوام بگه که مردم چه دونن که خودمون اونجوری که به خودش بیاد نمیدونن بگی نه طرفه خربه یا حافظ زجیب خربه یا حافظ چه درفت که ما سمت تلاشیدیم و استنام داره. سنا و خودش دوستی که خربه مال خب، یعنی خداوند سمتی سمت یعنی وسطش عالی بود مصمود یعنی تو یعنی سمد چیزی که جوف نداشت مراد انسانه که وسطش و ایدلاجمون پر و خواب و داره موزه نوازه میشیندنس که از غذامون خوابه بشتباه یعنی ای دکتر این غزالا رو شما به ترتیب این کتاب نکنیم حالا به ترتیب بعد هم ترتیب از اول از حلایه گرفتیم و هر ده جبسه بریم ده تا تا تا تا هر جبسه سه تا ها آل په اج ب染هacie حد نظر وده ب꺼돼 این چه challenge و capacity شوهام همتون کسی کمارشichi دار چه ترت وقتنسه چه تارل شما کیش ما تجربه در من اگر از مشان شهر در کیش ما تجربت انواق نمان نیست در نام اگر از مشان بزن. جوان بوزن زر برکن برای که انباع چیز، این خیال کردن که خودش رفته برای اول اسمش بردید. یاره باید در فند نامش هم یعنی در قید نامش ندرد. در قید نام ما اگر از نشان درد. بیدیده را اگر نطبان رفت پس چرا؟ چشمت جهان و بستی از آن میدرد. با گل بطن نگرد گل چشم است دگیم ندفن بریز مشکه کس را آشده نمیزن باریکمینیت باریکمینیت شده باید ز رو دلبره به آخرگیان گذشت.